دوستان، آیا تا حالا از خودتون پرسیدین که چرا عیسی دوازده شاگرد انتخاب کرد؟ امروز درباره این مردانی که ایسا انتخاب کرد تا موجود پادشاهی خودش رو توسط اونها منتشر کنه مطالب بیشتری خواهیم آموخت. مخت. همطور خواهیم دید که چطور به اونها تعلیم میداد. به دانشکدی کوچک کتاب مقدس خوش اومدین. این دوره رو ترتیب دادیم تا به شما در دانشه کتاب مقدسی کمک کنیم و در ایمان رشد کنید. حالا بیاید به معلممون ملحق بشیم تا درباره ایسا و شاگردان اون بیشتر یاد بگیریم. و چون جمع کسی دید دلش به بسوخت زیرا که مانند گوسفندان بیشبان پریشانحال و پراکنده بودند. آنگاه به شاگردان خود گفت حساد فراوان است لیکن عمله کم. پس از صاحب حساد استدعا نمایید تا عمله در حساد خود بفرستد و دوازده شاگرد خود را طلبیده ایشان را بر ارواح پلید قدرت داد که آنها را بیرون کنند و هر بیماری و رنجی را شفا دهند و نامهای دوازده رسولین است. اول شمعون معروف به پتروس و برادرش اندریاز، یعقوب بن زبدی و برادرش یوحنا فلیپوس و برتولما، توما و متای باجگیر یعقوب بن و لبی معروف به تدی شمعون و یهودای از خریوتی که او را تسلیم نمود. به کلاس دیگری از دانشکده کتاب مقدس خوش آمدید. وقتی عیسی به اولین گرد همایی مسیحیان پایان داد، موضوعات مطرح شده در اولین گرده همایی را به پایان برد و از شاگردان خواست تصمیم بگیرند و نظر بدهند. او کسانی رو که با حضورشون در اون گرد همایی میگفتند که می‌خواهند بخشی از راه های او بشن، به چالش کشید. ایسا در پایان گرده اونها را با این سوال به چالش کشید آیا می خواهید چه نوع پاسخی باشید ؟ میخواهید چه نوع راه حلی باشید؟ میخواهید چه جور شاگردی باشید؟ او گفت که این احتمالات وجود داره، او می گفت که اونها میتونند یکی از بیشمار کسان باشند و یا یکی از معدود افراد اونها میتونستن جز کسان بیشماری باشند که فکر میکرد راه سادهای برای راه حل و جواب سوالات شدن وجود داره و یا جز معدود افرادی باشند که میدونستند راه آسانی برای راه حل و جواب سوالات شدن وجود نداره. اونها میتونستند یکی از شاگردان دروغین یا یکی از شاگردان حقیقی باشند. اونها میتونستند یکی از کسانی باشند که فقط حرف میزنند و یا جزء کسانی باشند که عملاً چیزهایی رو که عیسی در بالای کوه تعلیم داد انجام دهند. وقتی عیسی با این دعوت بزرگ در پایان گردهمایی نظر شاگردان رو خواست فقط دوازده نفر به او پاسخ مثبت دادند. انجیل به ما میگه که بعد از اینکه عیسی اولین گرده همایی مسیحیان رو به پایان برد، به دوازده شاگردش معموریت داد که رسولان او باشند. کلمه رسول به معنی فرستاده هست یا کسی مانند معمور. قبلا دیدیم که عیسی مردی رویابین بود چون رویایی داشت. او معمور بود چون معموریتی داشت. در اولین گرده همایی مسیحیان، ایسا شاگردان را معمور میکرد که به همراه او رویا و معموریت او را با دیگران در میون بذارن ایسا میخواست که رویا و معموریتش را با مردم در میون بذاره و به این منظور میخواست که شاگردان بخشی از راه ها و جوابهای او برای نیازهای بشری این دنیا باشد اولین گردهمایی مسیحیان موفق بود چون کسانی که به دعوت او پاسخ مثبت دادن تعهد کردند که به نوبه خود از عیسی طبعیت کنند عیسی تعهدی در سطح بسیار بالا میخواست. ما می‌تونیم فرض کنیم که عیسی تعهد قطعی از این دوازده نفر گرفت که به اونها معموریت داد رسولان خاص یا های او باشند وقتی که در مورد انتخاب این دوازده نفر می‌خونید وقتی به کلمه شاگرد می‌رسید ملاحظه کنید که یک شاگرد بودن لازمه‌اش پرداخت بهای سنگینی بود در باب هشت متی ما می‌خونیم که وقتی عیسی از کوه پایین آمد افراد مختلفی نزدش اومدن و گفتند ما هر جا که تو بری تو رو پیروی خواهیم کرد اما عیسی گفت گوش کنید روباهان لانه ای دارند پرندگان آشیانه ای دارند من حتی جایی ندارم که شب سر بر بالیم بگذارم مردی نزد او آمد و گفت من به محض اینکه جنازه پدرم رو دفن کردم به دنبال تو خواهم آمد عیسی به کسانی که چنین حرف هایی چیزی مثل این می گفت. بگذار مردگان مردگان را دفن می‌کنند تو به دنبال من بیا کسی که دست به شیار میبرد و به پشت سر نگاه می کند، شایسته پادشاهی خدا نیست اگر میخواهید مرا پیروی کنید باید اولین اولویتتون من باشم قبل از پدر مادر شوهر زن و فرزندان هیچ کس در روی زمین نباید براتون بیشتر از من اهمیت داشته باشه به این دلیل میگم که عیسی از اونها تعهدی در سطحی بسیار بالا گرفت وقتی سطح تعهدی رو که این شاگردان به او سپردن مخصوصا تعهد اون دوازده نفر که به دعوت او در هایان معزه بالای کوه پاسخ مثبت دادن و مأموریت یافتند که رسولان باشند درد کنید با اون رو با تعهدی که امروزه ما در کلیساهامون میگیریم مقایسه کنید حیرت خواهید کرد سالها پیش من عضو باشگاهی در شهری بودم که در همون شهر شبان هم بودم به عنوان یک شبان پرمشغله نمیتونستم وقت زیادی صرف باشگاه بکنم. یک سال من سه جلسه پشت سر هم غیبت کردم و میدونید چی شد؟ اونا منو از باشگاه اخراج کردند. حالا ازتون میپرسم شما کدوم کلیسا رو سراغ دارید که اگه سه یک شنبه پشت سر هم غیبت کنید شما رو اخراج کنند. من کلیساهایی رو میشناسم که حتی اگر سه سال هم غیبت کنید اسم شما را خط نمیزنند. راستش رو بخواید کلیساهایی رو میشناسم که حتی اگه سی سال پیش مرده باشید باز هم اسمتون را از لیست خط نمیزنن اونا هرگز اسم شما را از لیست حذف نمیکنن. اینطور به نظر میرسه که ما داریم به دنیا میگیم مسیحی شدن برای شما در دربر نداره شاگردی برای شما هیچ ای و هیچ الزامی دربر نداره به طور میانگین امروزه در امریکا عضو یک باشگاه شدن خیلی سختتر از عضو یک کلیسا شدن هست این ادعای وحشتناکی در مورد مسیحیتی هست که امروزه ما تعلیم میدیم و موعظه میکنیم آشنایی با این دوازده مرد میتونه برکات روحانی و کاربردهای بزرگی داشته باشه این دوازده نفر بسیار بسیار مهم هستند نه تنها به خاطر اینکه اونها در پایان موعظه سر کوه به عیسی پاسخ مثبت دادن بلکه به خاطر اینکه این دوازده رسول عیسی مسیح به اعتقاد من کسانی بودند که مسیح میخواست به واسطه اونها با دنیا ارتباط برقرار کنه بنابراین عیسی از هر نوع شخصیتی در این گروه دوازده نفره داشت آشنایی با اونها بسیار مفید خواهد بود به خاطر سپردن اسامی این دوازده رسول مفید خواهد بود. اگر قلم و کاغذ بهتون بدم و ازتون بخوام اسامی دوازده نفر رو بنویسید چند نفر از شما میتونید این کار را بکنید اگر میخواید اسم این دوازده رسول رو حفظ کنید بزارید بهتون بگم که چطور این را بکنید تقسیم بندی کردن چیزها در موقع حفظ اونها به شما کمک میکنه چهار نفر اول دو تا دو تا با هم برادرند پتروس و آندریاس با هم برادرند یعقوب و یوحنا با هم برادرند و این چهار نفر با هم همکار هم بودند اونها مالک تاوونی خوراکهای دریایی زبدی بودند اونها با هم ماهیگیری میکردند پس یادتون باشه که این چهار نفر همیشه با هم هستند دو دسته برادر و با هم شریک کاری بودند پتروس آندریاس یعقوب و یوحنا حالا فیلیپس و برتولما با هم دیگه میان و توما و متا با هم اونها احتمالاً با هم دوست بودند چون اغلب با هم دیگه ذکر میشن شاید عیسی اونها رو جفت جفت تربیت کرده فیلیپوس کار تجارت اسب میکرد و این نشون میده که حرفه او به حمل و نقل مربوط میشد اگر امروز زنده بود احتمالاً فروشنده اتومبیل میشد اگر شما لیست رسولان رو مقایسه کنید به این نتیجه میرسید که برتولما هم نتنایل بود به نظر می‌رسد که تنها کسی بود که وقتی با عیسی ملاقات کرد، مرد روحانی بود. یادتونه وقتی عیسی نتنایل رو ملاقات کرد، عیسی به او گفت: این است یک اسرائیلی واقعی که در او مکری وجود ندارد. نتنایل پرسید: مرا از کجا می شناسی؟ عیسی جواب داد: پیش از آنکه فیلیپوس تو را صدا کند، وقتی زیر درخت انجیر بودی من تو را دیدم. ظاهراً نثنائیل سال‌ها زیر درخت انجیر وقت خلوت دعایی با خدا داشته. باید زمان خارق زیر درخت انجیر با خدا داشته باشه هیچ کس در این باره چیزی نمیدونه جز نتنایل و خدا وقتی عیسی این سخنان رو در مورد نتنایل گفت او پاسخ داده ای استاد تو پسر خدا هستی تو پادشاه اسرائیل میباشی اون سخنان عیسی همه چیز رو بر نتنایل آشکار کرد چون فقط نتنایل از چیزی که جا داره بهش دوستی زیر درخت انجیر بگیم خبر داشت نثنائیل وقتی با خدا ملاقات می کرد، جای مخفی داشت آیا شما هم دوستی زیر درخت انجیر با خدا داشتید آیا جایی دارید که با خدا خلوت کنید حالا توما آدمی روشنفکر با ذهنی پرسشگر بود امروز ما به چنین اشخاصی با ذهن پرسشگر میگیم توما یه شکاک توما احتمالاً در این گروه دوازده نفره فیلسوف بوده او سوالات زیادی میپرسی به هر حال بهتره که زود از او انتقاد نکنیم توما شاگرد متعهدی بود یک بار وقتی به نظر می رسید که عیسی میخواد به اورشلیم برگرده و وقتی اونها میفهمند علمای دینی میخواند او را بکشن، این توما بود که گفت بیایید برویم و ما هم با او بمیریم در حالی که بقیه شاگردان آماده بودند که فرار کنند، توما مایل بود که با عیسی بمیره متا باجگیر و معمور وصول مالیات بود. باجگیر کسی بود که از هم یهودی خودش برای رومیان مالیات می‌گرفت. و این معنیش این بود که شخص خائنیه. معمور وصول مالیات کسی بود که خودش رو به اشغالگران فروخته بود و از رومیان حقوق می گرفت. ملاحظه خواهید کرد که اناجیل به گناهکاران و باجگیران در یک ردیف اشاره میکنه. معنیش این نیست که باجگیران گناهکار نیستند بلکه نشون میده که باجگیران و گناهکاران هر دو در یک طبقه قرار دارند. یهودیان حقیقتا از باجگیران نفرت داشتند. این جالب نیست که عیسی یک باجگیر رو انتخاب میکنه که یکی از دوازده نفر رسول او باشه، مایلم کمک دیگه ای بهتون بکنم تا لیست رسولان رو به خاطر بسپارید. آخرین چهار نفر از لیست دوازده نفره اسمهاشون تکراری هست. برای مثال یک شمعون دیگر هست. پتروس اسم شمعون بود. شمعون دیگر به شمعون غیور معروف بود و این نشون میده که او مخالف کسانی بود که باج میگرفتند مثل متا. این شمعون میهن پرس بود. او به گروه متحصبی تعلق داشت که اگرچه رومیان بر یهودیان غلبه کرده بودند، معتقد به ادامه مقاومت علیه رومیان اشغالگر بودند. من گاهی تعجب میکنم که شمعون غیور و متا وقتی در راه خاکی سرزمین مقدس به دنبال عیسی آمدن، در مورد چی حرف می‌زدند؟ اصلا تعجب میکنم که چرا اونها با همدیگه صحبت می‌کردند. اونا وقتی کتاب مقدس اسامی دوازده نفر رو به ما میده کنار هم قرار ندارند. تصور کنید وقتی عیسی به باجگیر و شمعون غیور گفت که هاها یک یکدیگر رو بشوین و هم دیگر رو محبت کنن چه صحنه ای بوده یعقوب دیگری در این لیست دوازده نفره قرار داره که پسر حلفی هست. به این یعقوب در مرقس به عنوان یعقوب کوچک اشاره شده که نشون میده او شخص کوچکی بوده ما به او کوتاه قد میگیم خیلی خوشحالم که یه نفر کوتاه قد هم بین دوازده نفر بوده من همیشه فکر می کنم که من بلند قد ترین فرد قد کوتاه روی زمین هستم دو نفر هم در این لیست قرار دارند که اسمشون یهودا هست. یک یهودا برادر یعقوب هست که در بعضی ترجمه ها به او تدی یا لبی هم گفته شده. البته یهودای دیگر یهودای اسخریوتی هست. وقتی دوازده نفر رو مطالعه کنید، یکی از مهمترین چیزهایی که باید ملاحظه کنید، روشی هست که عیسی به اونها مأموریت داده. عیسی به اونها مأموریت بسیار وسیعی داد. وقتی یک افسر ارتش دستوری دریافت میکنه اون رو خیلی جدی می گیره. خدمت او در ارتش مأموریتی از طرف رئیس جمهور هست. وقتی او فرمانی دریافت میکنه اون فرمان بسیار مهم هست و او با تمام جزئیاتش اونها رو به جا میاره اونها رو به دقت انجام میده و مأموریتش رو دست کم نمیگیره ملاحظه کنید که در انجیل متا عیسی به این رسولان فرامینی میده. اونها فقط باید نزد یهودیان برن بعد وقتی در پایان کتاب متا عیسی مأموریت بزرگ رو به اونها میده به اونها مأموریت میده که نزد تمامی امتها. و تمام افراد برون اما در ابتدا وقتی به آنها مأموریت میده میگه نزد گوسفندان گمشده اسرائیل بروید فرامین در عهد جدید همیشه این بوده که اول یهودیان و البته یونانی ها هم بودن اما اول یهودی ها همیشه یهودیان در اول قرار داشتند رسولان باید پادشاهی آسمان رو مععزه کنند باید پادشاهی خدا رو با عطایا و نشانه ها نشون بدن. باید بیماران را شفا بدن. جزامیان رو پاک کنند دیوها رو اخراج کنند و مرد رو زنده کنند اونها باید تمام این خدمت طهای رایگان انجام بدن باید به خدا اعتماد کنند که نیازهاشون رو رفع کنه اونها نباید برای کاری که میکنن به کسی متکی باشن نباید از کسی چیزی بخوان من مطمئنم که اگر امروزه رسولان اینجا بودند، وقتشون رو صرف خواستن پول نمیکردند. اونها معموریت داشتن که این کارو نکنن اونا باید با ایمان زندگی می‌کردن و توقع داشتند که خدا نیازهاشون رو رفع کنه. به اونها هشدار داده شده که از اونها استقبال خوبی نخواهد شد. عیسی با اونها گفت خوب توجه کنید. من شما را مانند گوسفندان به میان گرک ها می میفرستم. شما باید مثل مار هوشیار و مانند کبوتر بیازار باشید. اونها همونطور که ماهیگیر بودن، شبان هم بودن. بعضی از اونها هر دو کار را انجام دادند. تجاسوم شبان و گوسفند در فرهنگ اونها بسیار ملموس بود یکی از چیزهایی که یک شبان همیشه ازش میترسه ها هستند که شبانه به گله حمله میکنند و گوسفندان یا بره ها رو میکشند مفهوم فرستادن گوسفندان و یا ها به داخل گله های گورک تمثیل واضحی بود که عیسی به اونها نشون داد چیزی که عیسی به رسولان میگفت این بود وقتی شما برید و مرا به دنیا معرفی کنید دنیا به شما خیر نخواهد گفت عیسا در اولین گردهمایی همایی مسیحیان تعهد وحشتناکی از اونها میخواست چون میدونست که همه رسولان به خاطر او خواهند مرد می میدونست که اگر این رسولان این تعهد محکم رو نسپارند اونها تا به آخر نخواهند ایستاد ایسا می میدونست که اونها با چه چیزهایی مواجه خواهند شد آیا واقعا به دعوتی که ایسا در پایان موعظه سر کوه کرده گوش کردید سطح تعهدی که شما نسبت به عیسای مسیح دارید چی هست؟ حساب رسولان گفت که در مورد خدمتشون باید خیلی بسیر باشند. اونها نباید مرواریتاشون رو نزد خوک ها اندازن و وقتی وارد ای شدن و روح القدس اونها رو به عطایای روحانی پر کرد، اونها نباید کسی رو داوری کنن. مهم نیست که چطور اونها را پذیرفتند. اگر به این نتیجه رسیدند که تشنگی روحانی وجود داره و اونها رو میپذیرند باید برای سلامتی و آرامش اونها و تمامی قدرت روح بر اون خانه دعا کنند. اما اگر اونها رو نپذیرفتند و اونها تعلیم داده شده که خاک پاهایشان را بتکانند و به خانه دیگری بروند در کتاب اعمال وقتی که پولس رسول در اروپا کلیسا احداث میکنه اولین کلیسایی که تأسیس میکنه در خانه زن کوچکی هست که پارچه‌های ارغوانی میفروشه اسم او لیدیا هست. اشرافزادگان پارچه ارغوان میپوشیدند لیدیا احتمالا خیاط زنانه خانواده‌های اشرافی بوده پولوس خواسته بود به آسیا بره ولی روح القدس اكيداً به او گفته بود نه آسیا نه برو اروپا الان در اروپا هزاران کلیسا وجود داره میتونید به اروپا برید و دیدن همه این کلیساها شاید ده سال طول بکشه اما اولین خانه پرستش در اروپا خانه یک زن بود وقتی که پولوس در کنار رودخانه در یک جلسه دعای زنان کلام خدا رو موعظه می کرد ما می خونیم که لیدیا حرفای پولوس رو میشنوه وقتی او به سخنان پولس گوش داد، خدا قلب او را باز کرد و در نتیجه او در خانهش را باز کرد. او گفت اگر مرا لایق بدانید، از خانه من به عنوان پایگاه خدمتتون استفاده کنید. لیدیا ایمان داشت که افتخار و فرصت بزرگی هست که پولس کلام خدا را در خانه او تعلیم بده. و به این ترتیب اولین کلیسا در اروپا شکل گرفت. وقتی عیسی به شاگردان مأموریت میده که برند و به خاطر او بمیرند، یکی از بزرگترین تعالیم تمثیلی خودش رو میده. عیسی به رسولان گفت: فرض کنند که زندگی‌های اونها مثل ماده‌ای در ظرفی هست. لیوانی رو تصور کنید که مقداری آب درون آن هست، شاید سه چهار روم لیوان پر از آب باشه. حالا لیوان در این تمثیل نماد بدن شماست. آب نماد زندگی شماست. همه ما زندگی داریم که در ظرفهای خاکی وجود داره. عیسی با اونها چهار مطلب درباره زندگیشون گفت که در ظرفهای خاکی قرار داره. اول گفت شما نمیتونید زندگی خودتون رو حفظ کنید. اگر شما به ساعت شنی فکر کنید که شنهایی از اون پایین میریزه چیزی که عیسی میگه اینه که شما نمیتونید از پایین اومدن شنها جلوگیری کنید. نویس به ما میگه که هیچ کس نمیتونه جان خودش رو زنده نگه داره. شما سالهای معینی رو برای زندگی دارید مقدار معینی زندگی در ظرف خاکیتون دارید شما نمیتونید مانع بیرون آمدن حیات از اون ظرف خاکی بشید شما نمیتونید کیفیت زندگی رو که در این ظرف خاکی دارید حفظ کنید یا نگه دارید دومین مطلبی که عیسی به شاگردان درباره زندگی گفت این بود شما میتونید بر چگونگی خارج شدن ماده از ظرف قدری کنترل داشته باشید شما میتونید اجازه بدید زندگی شما از ظرف خاکیتون به بیرون تراوش کنه در احتق قدیم در دوم سماuil 14 14 شما این تمثیل رو میبینید سرانجام همه ما میمیریم زندگی ما مثل آب است که وقتی به زمین ریخت جمع کردن آن غیر است حتی خدا نیز جان کسی را نمیگیرد بلکه در عوض میکوشد تا جان گم شده ای را باز یابد من خیلی دلم به حال افراد مسن میسوزه که هنوز دنبال مفهوم زندگی میگردند ما با مردی که حدود هشتاد و نه سالش بود به مدت شش ماه هر سهشنبه صبح جلسه صبحانه ای داشتیم. او در صدت بود که مفهوم زندگی رو پیدا کنه. یه روز صبح بعد از صبحانه او با هیجان گفت فهمیدم. فهمیدم. بالاخره فهمیدم و در همون موقع ایمان آورد. من کاری از دستم بر نمیومد جز اینکه براش متاسف باشم چون که قسمت اعظم زندگی او از ظرف خاکیش مانند آب به بیرون ریخته بود و دوباره نمیشد جمع کرد. حالا وقتی عیسی به رسولان مأموریت داد به اونها گفت این یکی از گذینه های شماست شما میتونید اجازه بدید زندگیتون مانند آبی بر روی زمین ریخته بشه که هرگز نتونید اون رو دوباره جمع کنید و یا میتونید اجازه بدید زندگیتون عمدن برای چیزهای خطا صرف بشه به این غالبا به عنوان گناه عیسو اشاره میشه عیسو نخصادگیش رو به کاسه‌ای آش فروخت خیلیا هستند که مواد درون ظرف خاکیشون یا زندگیشون رو هدر میدن اونها میگن ما زندگی خودمون رو صرف کارهای شرکت میکنیم، صرف خودمون میکنیم. اگر میخواهید به عنوان مرد جوان به جایی برسید، در بسیاری از شرکت‌های بزرگ اگر در شما جنبش رو ببینن، شما را به کناری می و میگن پسرم تو میتونی در این شرکت به جایی برسی، اما ما تعهد کامل تو رو میخوایم بسیاری از این شرکت‌های بزرگ اهمیتی به خانواده انسان نمیدن. اونها به اولویت‌های مربوط به فرزندانشون اهمیت نمیدن. فقط میگن اگر میخواهید در این شرکت به سرعت ترقی کنید ما تمامیت تو را میخوایم. در یک هفته حدود 168 ساعت هست و ما همه اونها را میخوایم. مردان جوان زیادی هستند که جنین تعهدی را به کمپانی ها میسپارند حالا عیسی میگه این یک گزینه است هست و شما میتونید عمدن زندگیتون رو صرف اهداف غلط کنید که بهش گناه عیسو میگن یعنی میتونید زندگیتون رو مثل ایسو به کاسه یاش بفروشید و روزی مثل ایسو با صدای بسیار بلند و جگرسوزی گریه کنید و بدونید که کسی نشدید که خدا انتظار داشت بشید عیسی به رسولان گزینی چارومی هم داد به اونها گفت میتونید زندگیتون رو برای خدا قربانی کنید برای پادشاهی خدا و برای من میتونید نزد من بیایید تا نشون بدم که زندگیتون رو کجا صرف کنید کی زندگیتون را از دست بدید و به خاطر چه چیزی زندگیتون رو از دست بدید این کاری بود که عیسی به رسولان معموریت داد او به رسولان معموریت داد که برن و رویاهای او رو تحقق ببخشند چیزی که به اونها میگفت این بود من شما را میفرستم که زندگیتون رو قربانی کنید من شما را میفرستم که جانتون رو برای پادشاهی خدا و برای انجیل که معموریت معزش رو دارید قربانی کنید وقتی به عیسی و اون شاگردان نگاه کنید جالبه که ببینید چطور ایسا مرتبا به اونها تعلیم میده. حیرت انگیزه که بدونید تعالیم او خطاب به توده مردم نیست بلکه خطاب به شاگردانشه. قبلا هم دیدیم که سر سرکو خطاب به شاگردانش بود. او شروع به صحبت کرد و متا پنج و شش و هفت رو به اونها تعلیم داد. تعالیم کوه زیتون در پاسخ به سوالات شاگردان به اونها داده شده. در بالاخانه کسی جز شاگردان وجود نداشتند. بعد از اینکه یهودا به او خیانت کرد و رفت فقط 11 نفر بودند. عیسی در یوحنا 13، 14، 15 و 16 طولانیترین صحبتش رو خطاب به 11 نفر از شاگردانش می‌کنه. مخاطب تعالیم عمده عیسی توده مردم نیستند. هر چیزی که عیسی گفته و هر کاری که عیسی کرده رسولان شاهدش بودند. عیسی همیشه به اونها تعلیم می‌داد و اونها رو تربیت می‌کرد. گاهی کلاس او غیرعادی بود. ما برای کلاس استانداردهای خودمون رو داریم. ما باید تخته سیاه داشته باشیم و باید چیزهایی رو روی تخته سیاه بنویسیم و چیزهایی مثل این میگیم. حالا میخوایم در مورد ایمان با شما صحبت کنیم یا الان می‌خویم ها رو به شما تعلیم بدیم. همونطور که در نیمه دوم متا شش میبینید، عیسی اینطور تعلیم نمیده. تمامی دنیا کلاس درس او بود. هر موقعیتی و هر مواجهه‌ای با رسولان کلاس درس او بود. مثلا در مرقص باب چهار راجع به این واقعه زیبا میخونید عیسی به شاگردان گفت که به اطراف دریای جلیل بروند دریای جلیل حدود هفت مایل طول و چهار مایل عرض داره شاید بعضی از شماها اونجا رو دیده باشید حالا به رسولان گفته شده که از دریای جلیل عبور کنند عیسی به عقب قایق میره و میخوابه وقتی اونها از دریای جلیل عبور میکردند ناگهان طوفان شدیدی برخاست و امواج به قایق میزدند به طوری که نزدیک بود قایق از آب پر بشه در این موقع عیسی در عقب قایق سر خود را رو روی بالشی گذاشته و خوابیده بود او را بیدار کردند و گفتند ای استاد مگر در فکر ما نیستی نزدیک از غرق بشویم او برخاست و با پرخاش به باد فرمان داد و به دریا گفت ساکت و آرام شو باد ایستاد و آرامش کامل برقرار شد بعد عیسی به ایشان فرمود چرا انقدر ترسیدید آیا هنوز ایمان ندارید آنها وحشت به یکدیگر میگفتند این کیست که حتی باد و دریا هم از او اطاعت می‌کنند در این داستان کوچک شما اول یک طوفان بزرگ می‌بینید و بعد یک آرامش بزرگ در فاصله بین طوفان و آرامش بزرگ یک سوال بزرگ می‌بینید این طوفان به لحاظ تمثیلی به اعتقاد خیلی ها همون طوفان‌هایی که همه ما در زندگی داریم شما مشکل شریج رو در نوع خودش چطور توضیح میدید چطور این واقعیت رو توضیح میدید که ما طوفان‌هایی داریم ما مشکلاتی داریم آیا فکر می‌کنید عیسی ایسا میدونست که طوفان برخواهد خواست؟ ایسا میتونست آب و هوا رو کنترل کنه. شاید نه تنها میدونست بلکه ممکن خود او کاری کرده که طوفان بشه. آیا فکر می‌کنید که دست کم و اجازه داده که این طوفان پیش بیاد؟ در میانه طوفان قایق پر از آب می‌شد و اونها واقعا باور داشتند که قرق خواهند شد. اونها به عقب قایق هجوم میبرند و عیسی رو بیدار می‌کنند و میگند آیا اهمیت نمیدی که همه ما داریم غرق میشیم؟ و او در جواب میگه چی بر سر ایمانتون اومد؟ چرا این همه میترسید ببینید او به اونها میگه که من امانوئیل یا خدا با شما هستم حالا اگر اونها ایمان داشتند که عیسی خداست و خدا با اونها در قایق کوچک بود آیا اونها باز هم باور میکردند که به همراه عیسی غرق خواهند شد معلومه که اونها هنوز به اون مرحله از ایمان نرسیده بودند تمامی اون تجربه برای این بود که به اونها ایمان رو بیاموزه اونها رو در ایمانشون رشد بده و در سفر ایمانیشون به پیش ببره این کلاس ایمان به روش عیسی هست نه تخت سیاهی و نه کلاس درسی فقط دریایی هست که طوفانی شده در میانه این طوفان عیسی ایمان رو به اونها تعلیم میده و به اونها تعلیم میده که در قایق همراه اونها هست و دوست اونها هست. این مفهوم زیبایی هست به این فکر کنید کتاب مقدس میگه آیا این امکان هست که با عیسی مسیح دوستی کنیم آیا باور می کنید که این امکان هست که عیسی در قایق شما باشه؟ اگر عیسی مسیح با شما در قایق هست، آیا فکر می کنید که تفاوتی خواهد کرد؟ البته که فرق میکنه. اون بندازیه تمام دنیا فرق میکنه. کاربرد این داستان واضح است. آخرین بار کی در زندگی طوفان داشتید؟ یادتون میاد در پایان متا هفت عیسی گفت دو خانه وجود داره و طوفان بر هر دوی اونها فشار میاره. یکی از هم می پاشه و دیگری باقی میمونه اما طوفان بر هر دو فشار میاره همه از طوفان عبور میکنن زندگی همینه زندگی یعنی طوفان آخرین باری که طوفان داشتید آیا یادتون میاد که عیسی با شما در قایق بوده آیا یادتون میاد که فرزن اگر باور کردید که او با شما بوده باز هم فکر میکردید که غرق خواهید شد و یا فکر میکردید که غرق نمیشید اگر او با شما باشه غرق نخواهید شد دفعه بعد که با طوفان مواجه بشید آیا این رو به یاد خواهید آورد وقتی طوفان‌ها برپا می‌شوند ما را غافلگیر می‌کنند ما مستعد این هستیم که فراموش می‌کنیم او با ما در قایق هست درست مثل این رسولان ما هم فکر می‌کنیم که غرق خواهیم شد نزد او می‌آییم و می‌گیم آیا اهمیت نمی‌دی البته که اهمیت میده در میانه طوفان‌ها ما فکر می‌کنیم او می‌خواد از ما این رو بپرسه چرا می‌ترسی خداوند شبان من است. محتاج چیزی نخواهم بود چون من یقین دارم که خداوند با منه از بدی نخواهم ترسید. ببینید اگر واقعا باور کنید عیسی با شما هست ترس شما برطرف میشه. البته ایمان چیزیه که باید رشد کنه. ایمان مثل دانه کوچک خردله. عیسی به ما میگه اون باید رشد کنه. به این دلیل عیسی گفت بیایید به طرف دیگر دریا بریم. عیسی میدونست که باید چیزی به رسولانش تعلیم بده. او میدونست که طوفان داره میاد. میدونست که در میانه اون طوفان از اونها این سؤال بزرگ رو خواهد کرد تا ایمانشون رشد کنه امروز هم عیسی وقتی به زندگی من و شما نگاه میکنه همون کار رو میکنه او میخواد ایمان ما رشد کنه مثل مارتا ما هم نگران بسیاری از چیزها هستیم عیسی علاقمند به چیزهای روحانی هست. عیسی میخواد که ایمان من و شما رشد کنه به این دلیل اجازه میده برخی از اون طوفانها در زندگی ما برپا بشه دفعه بعد که با طوفان مواجه بشید آیا این رو به یاد خواهید آورد؟ سوال واقعی اینه چه کسی با ما در قایق هست؟ کاربرد شخصی و روحانی این داستان زیبا در مرقس باب چهار این هست. طوفان بزرگ، آرامش بزرگ و سوال بزرگ. بله عزیزان، چه چالش بزرگی. دفعه بعد که های بزرگ و مشکلاتی در زندگیمون پیش بیاد یادمون باشه که عیسی وعده داده اون همیشه با ما خواهد بود و ما رو ترک نخواهد کرد اگر ما به اون وفادار باشیم آیا این تصمیم رو گرفتید که یکی از پیروان اون باشین اگر نگرفتید از شما دعوت می‌کنیم که امروز این تصمیم رو بگیرید و شروع به پیروی خداوند عیسی مسیح بکنید دایما اینه که تا برنامه بعدی حضور و آرامش او رو حتی در طوفان‌های زندگیتون تجربه کنین خداوند به شما به فراوانی برکت بده